زندگی می کرد یک روز بلز از کار خسته شد و زیر درختی نشست سرش رو روی دستهایش گذاشت و شروع کرد با صدای بلند گرگر کرده همه زندگی من شده کار کار کار هیچ چیز جدیدی وجود نداره همیشه آرزوی چیزای بهتر دارم اما خدا که گوش نمی کنه خدا آرزوهای همه مردم رو براورده می کنه جز آرزوهای منو. آه خدای من دیگه نمیتونم ادامه بدم به زودی میمیرم شکایت او به گوش زئوس، الهی قدرت رسید ناگهان از آسمان پایین آمد و در حالی که در دستش رعد و برق داشت بلز خیلی ترسیده بود به پاش افتاد و با التماس گفت زئوس، منو ببخش نمیخواستم شکایت کنم آرزو هم مهم نیست فقط رد و برگو از من دور کن و بذار همینطور که هستم باقی بمونم زئوس، اله قدرت گفت لازم نیست به ترسی اون چرا که گفتی شنیدم و اومدم بهت بگم که شکایتت عادلانه نیست به تو فرصت سه آرزو میدم هرچه بخوای میتونی آرزو کنی حالا فرصت داری تا خودتو خوشحال کنی اما به خاطر داشته باش که شادی تو به اونچه که آرزو میکنی بستگی داره. بنابراین پیش از اون که آرزو کنی خوب فکر کن حتما جناب زووس مطمئن باشید خیلی ممنون زووس به آسمان رفت و بلز به سرعت به سمت خونه براه افتاد با خودش فکر میکرد که چون این مسئله مهمی رو باید با همسرش درمیون بگذاره اسم همسرش فانکن بود او زنی شاداب باهوش و زیبا بود همینطور که بلز درباره سه آرزو با همسرش صحبت میکرد هزاران چیز به فکر فانکون رسید. چیزهای جالب و زیادی که اونا میتونستن آرزو کند. فانکون گفت اما بهتره دقت کنیم و خوب تصمیم بگیریم حالا بخوابیم و فردا اولین آرزو رو بکنیم. به همین ترتیب شب گذشت. صبح بلز گفت همسر فکرم. حالا بهتر جشن بگیریم تمام نراحتی و نگرانیای ما تمام میشه و از حالا به بعد میتونیم اونطور که میخواییم زندگی کنیم بیلز صندلیش رو کنار آتش کشید و گفت با کمی هیزم آتش مطبوعی درست میشه راستی میدونی آرزو دارم چی داشته باشم؟ یه متر است که هرچی میخورم تمام نشه هنوز حرفش تمام نشده بود که همسرش یه رشته سوسیس را دید که از دودکش پایین این می اومد و مثل مار به طرف او می خزید. زن ترسید و فریاد کشید. اوه اوه اوه این چیه؟ فهمید که آرزوی شوهرش برآورده شده. بنابراین فریاد زد. این آرزوی تو بود. ببین چی شد؟ آدم ساده لوه کودن. کل گنده بی فکر. میتونستی امپراتوری، طلا نقره، مروارید و الماس و لباس های آرزو کنی. اما نکردی. فقط سوسیس آرزو کردی. مرد زمزمه کرد. درسته. آرزوی ای کردم. لازم نیست ادامه بدی. هنوز دوتا آرزو مونده. زنش فریاد زد. میتونم به جرأت بگم که اون دوتا رو هم هدر میدی. لعنت به تو. تو کل گنده نادون. بیلز با عصبانیت رو بزن کرد و گفت بیزن بودن بهتر از داشتن همسری مثل توه بس دیگه به تاون تا گرفتار بشی از زئوس میخوام که این سوسیس روی بینیت باشه آرزو فوری برآورده شد فانکون با ترس در آینه نگاه کرد سوسیس سیاه بزرگی روی دهنشو رو گرفته بود طوری که به سختی میتونست صحبت کنه بلز با خودش فکر کرد نباید شکایت میکردم هنوز یه آرزو باقی مونده میتونم آرزو کنم پادشاه بشم اما چه پادشاهی با همسری که روی دماغش سوسیسه بهتر نظر خودشو بپرسم از همسرش پرسید حالا فان کن ترجیح میدی ملکه باشی یا یه سوسیس روی بینی یا همسر هیزم شکن با همون بینی زیبایی که داشتی فانکون فکر کرد اگه ملکه میشد هیچکس جرئت نمیکرد بینی او رو ببینه از طرف دیگه دوست زیبا باشه سرانجام تصمیم گرفت زیباییش رو حفظ کنه و فقیر بمونه تا اینکه ای زشت باشه بلز گفت منم همینطور فکر می کنم. آرزو میکنم همسرم همونطور که بود بشه و بعد هم اضافه کرد به علاوه چه کسی میخواد شاه باشه بهتر همینطور که هستم خوب تلاش کنم اون بالا الهی قدرت زئوس به بلز میخندید. او میتونست همه چیز رو از زمین و آسمان آرزو کنه اما فقط تونست آرزو کنه که جای خودش باقی بمونه. و این خیلی ارزشمند بود، داستان آخر زیبا و حیولا یکی بود یکی نبود در روزگارهای قدیم تاجری با سه پسر و سه دخترش در شهری کوچک زندگی می کردند تاجر سالها پیش همسرش را از دست داده بود و خودش به تنهایی از برچه ها مراقبت میکرد. هر چیزی رو که میشد با پول خرید تاجر برای فرزنداش آماده میکرد. حتی اونا را به مدرسه هم فرستاده بود چون تاجر به کسب علم و دانش خیلی اهمیت میداد فرزندان تاجر همه او رو دوست داشتند اما دختر کوچکتر پدرش رو بیشتر از بقیه دوست داشت او با پدرش زندگی می کرد تاجرم براش معلم گرفته بود چون دخترش عاشق موسیقی و کتاب بود هر پدری اینقدر برای دخترش سختی و مشقت نمی کشید و دختر میدونست که چقدر مدیون پدرشه دو خواهر بزرگتر هم به همون باهوشی بودند اما اونا دخترهای شوخ و ای بودند و موندن در خانه براشون کسالت آور بود اونا با لباسهای فاخر در شهر می گشتند و در مهمانی ها با بحثهای هوشمندانه معلومات خود را رو به رخ همه می کشیدند در ضمن خیلی دوست داشتند در بین طبقات بالای اجتماع رفت و آمد کنند تنها آرزوی اونا در زندگی کسب موقعیت بالای اجتماعی بود حتی خواهر کوچیکشونم نصیحت میکردند چون به نظر اونا خواهرشون اهمیت پول و موقعیت را نمیدونست و همیشه با افراد فقیر نشست و برخاست میکرد اونا به خواهر کوچیکشون میگفتند تو از دنیا چیزی نمیدونی تو دختری دانشمند ولی خوننشین هستی خواهر کوچولو تازه مثل یه دختر قدیمی هم لباس می پوشی درسته که لباس دختر کوچکتر مطابق آخرین مد روز نبود اما همه مردم او را تحسین می کردند حتی طوری بود که از بچگی او را زیبای کوچولو صدا میکردند. دختر کوچولو حالا بزرگتر شده بود و همه او را زیبا صدا میکردند. خوهرهای زیبا به او حسادت میکردند. اونا در گوشه هم پچ پچ میکردند و میگفتند زیبایی ما به اندازه زیبایی خواهرمونه پس چرا همه فقط او رو زیبا صدا میکنند؟ اما به نظر میومد که زیبا جذبه خاصی داره. خوهراش نمیدونستن از چیه اما آرزو داشتند او رو بکشند. زیبا میدونست که خوهراش از او متنفرند اما قلب او اونقدر مهربون بود که نمیتونست بدخواه اونا باشه و امیدوار بود روزی او رو دوست داشته باشن. اونا هر سشون به عنوان دختران یه مرد ثروتمند خواستگاران بسیاری داشتند. اما زیبا فکر میکرد هنوز برای ازدواج زوده. به همین خاطر خیلی معدبانه خواستگارانش رو رد میکرد. در حالی که خواهرش اینطور نبودند. اونا تاجرها و بازرگانها را مسخره می کردند دخترای مغرور اهمیت نمی که خودشون دختر یه تاجر هستند و فقط می خواستند با دوک یا کسی در همون طبقه ازدواج کنند و نه هیچ کس دیگه اما بر حسب اتفاق تاجر همه پول و ثروتش را از دست داد به همین خاطر شانس فرزندانش در مورد ازدواج کم شد تنها چیزی که برای تاجر باقی موند یه مزرعه کوچیک تو دهکده بود. زیبا به خاطر از دست رفتن ثروت خیلی ناراحت بود، اما نه نشون میداد نه میخواست پدرش رو غمگین کنه. زیبا با خودش فکر میکرد پول از دست رفته فقط باید سعی کنیم که بدون اون شاد باشیم. خواهراش هرگز اینطور فکر نمیکردن. اونا میگفتن پدر دهکده برای خوک ها و بزاست ما ازدواج میکنه و توی شهر میمونیم. اما حالا که پول نداشتن خواستگارا هم رفته بودند. در حالی که زیبا هنوز خواستگارانی داشت که مایل به ازدواج با او بودند. اما جواب زیبا مثل قبل بود. او برای ازدواج خیلی جوان بود. تازه حالا باید به پدرش هم کمک میکرد. در دهکده باید کار میکردند. پدر و برادرش در مزرعه کار میکردند و زیبا باید ساعت چهار صبح بلند میشد و برای اونا صبحانه آماده صبحان بعد هم به کارهای خونه رسیدگی میکرد و از حیوونا مراقبت میکرد. تازه با این همه باید ریسندگی و بافندگی هم میکرد. خواهرهای بزرگتر به سیاه و سفید دست نمی زدند. فقط تمام وقت غرغر میکردند که دوستان باهوش و محیطهای علمی شهر رو از دست دادند. همه کارها به عهده زیبا بود. زیبا عادت نداشت مثل یه خدمتکار این همه کار بکنه. و به همین خاطر کم کم رنگ پریده و لاغر شد اما بعدها به مرور عادت کرد و مثل اولش شد که باعث شد خواهراش دوباره او را سرزنش کند. اونا به زیبا میگفتند فقط یه آدم کودن از همنشینی با گاوا و گوسفندا ترقی میکنه خواهر کوچولو زندگی در دهکده مغزتو رو پوک کرده البته پدرشون با حرف اونا موافق نبود و هم با زیبا رو بیشتر از هر چیز دیگه دوست داشت اما هیچ وقت به زبون نمی آورد او همیشه دختراش رو دوست داشت و دلش نمی خواست بین اونا فرق بگذاره یک سال بعد خبر رسید که یک کشتی با کالا در بارانداز لنگر انداخته که متعلق به تاجر بود دخترا گفتند پدر ما دوباره ثروتمند شدیم دخترای بزرگتر بسیار خوشحال بودند و قبل از اینکه پدرشون آزمش شهر بشه، فهرستی از چیزهایی که باید میخرید، از قبیل لباس و کلاه و چیزهای دیگه بهش دادند. تاجر رو کرد به زیبا و پرسید، برای تو چی بیارم؟ زیبا میترسید، اگه همون چیزهایی رو که خواهرانش خواستند بخواد، پدرش پول کم میاره. اما در عین حال نمیتونست بگه چیزی نمیخواد. به همین خاطر از پدرش فقط گل روز خواست. زیبا گفت، پدر، اینجا گل روز نداریم، بنابراین کمیاب و با ارزشه. اما وقتی تاجر به شهر رسید، به علت محدودیتهای قانونی کالاهاش رو ازش گرفتند. حالا دوباره فقیر شده بود. با قلبی گرفته راهی خونه شد. بعد اقبالی او تمومی نداشت. از جنگل میگذشت که در میانه های راه گم شد. برف هم شروع به باریدن کرد. ناگهان از اسب پایین افتاد. صدای زوزه گرگ ها هم به گوش می رسید. می دونست که هر لحظه ممکن تعمه گرگ ها بشه. در انتهای جاده از میان درختها نوری به چشمش خورد. به طرف نور براه افتاد. نور مربوط به قصری بود که هرچی نزدیکتر می شد روشنایی از هر پنجرش دیده می شود. تاجر خیلی خوشحال شد و اسبش رو در استبل بست و غذا داد و خوش کرد. و سپس خودش به قصد رفت و در زد هیچ کس پاسخ نداد اما در باز شد تاجر خودشو در تالاری وسیع با آتشی روشن دید روی میز هم غذای متقوی چیده شده بود که تاجر فکر کرد صاحب خونه به میاد به همین خاطر منتظر شد اما وقتی ساعت ضربه های یازده رو نواخت دیگه نتونست استاقت بیاره غذا لذیذ بود و تاجر گرسنه یه شکم سیر غذا خورد حالا فقط به فکر خوابیدن بود بیرون از خونه برف شدیدتر از پیش میبارید و او مطمئن بود که صاحب خونه اعتراض نمی کنه اگه شب رو اونجا بمونه تاجر از بین انبوه مبلمان و اسباب و اساس گذشت و به اتاق خواب رسید و براحتی تا صبح خوابید وقتی از خواب بیدار شد دید براش لباسهای تمیز آماده کردند وقتی بیرون رو نگاه کرد در کمال تعجب متوجه شد که دیگه برف نمیاد و باغ که معلوم بود به خوبی از اون نگهداری میشه زیر نور خورشید زیباتر به نظر میرسید تاجر با خودش فکر کرد که این مکان جادوییه. این قصر باید متعلق به یه پری باشه وقتی وارد تالار شد و دید که صبحانه آماده است دیگه کاملا یقین پیدا کرده بود که همینطوره. تاجر با صدایی بلند به حامی جادوییش گفت: به خاطر مهمان نوازی گرم شما خیلی متشکرم. و در حالی که می رفت، اسبش را از استبل بیاره، بوتوهای گل رز رو دید. ناگهان به یاد درخواست دخترش زیبا افتاد و یک شاخه گل رز چید تا براش به خونه ببره. اما به محض اینکه شاخه بوته رو چید، صدایی وحشتناک شنید برگشت رو نگاه کرد زشتترین و ترسناکترین موجود روی زمین بسیار خشمگین پشت سر او ایستاده بود حیولا با صدایی وحشتناک گفت من زندگی تو رو نجات دادم هر ای که داشتی برآورده کردم و حالا تو در عوض گلهای منو که برام از هر چیز دیگه با عرضش ترن می برای این کارت باید بمیری. بنابراین صاحب خانه این بود نه یه پری. تاجر به پاش افتاد و گفت ارباب منو ببخش نمی صدمه بزنم من این گلها رو برای دختر کوچکم می او از من گل روز خواسته بود. حیولا گفت انقدر چاپروسی نکن تو یه هیولا دیدی بنابراین باید به من توهین کنی اما تو گفتی که چندتا دختر داری تو رو میبخشم به شرط این که یکی از دخترات به خواست خودش جای تو بمیره تاجر شروع به صحبت کرد اما حیولا صحبتش رو قطع کرد و گفت حالا برو اما قول بده اگه هیچ کدوم از دخترات مایل نبودن جای تو بمیرن خودت برگردی تاجر قصد نداشت که از دختراش فدا کنه تا خودش زنده بمونه اما تو این فرصت میتونست از فرزندانش خود حافظی کنه بنابراین قول داد که برگرده و رفت حیولا دستور داد نمیخوام مثل یک گدا خونه برگردی برو به اتاقی که تو اون خوابیده بودی صندوقی اونجاست از هر چیز که دوست داری اونو پر کن من صندوق رو برات میفرستم همینطور که مرد صندوق رو پر میکرد چشمش به تکه های طلا افتاد تا میتونست صندوق رو پر کرد و درش رو بست با این حساب ارسی داشت که برای فرزندانش به جا بگذاره اما تاجر نمیتونست بفهمه که چرا حیولا از یه طرف میخواست او رو بکشه و از طرف دیگه بهش هدیه میداد وقتی تاجر به خونه رسید گلهای رز رو به زیبا داد و اون چرا که اتفاق افتاده بود و قیمتی رو که باید برای گلها میپرداخت براش تعریف کرد زیبا خوش زد و وقتی خواهراش گریه میکردند و بهش دوشنام می دادند ساکت بود خواهراش می گفتند خانم خانما گل خواستند چی می اگه لباس میخواستی؟ غرور تو به قیمت زندگی پدر عزیز ما تمام شد و تو آدم سنگدل حتی نمیتونی یه قطر عشق بریزی زیبا گفت چرا گریه کنم آخه می خودم به جای پدر به قصر برگردم زیبا به آرامی صحبت می کرد گویا کاملا تصمیم خودش را گرفته بود اما برادراش می که اونا یا حیولا رو می یا کشته می شن. پدرشون گفت که بیشک می میرن و ادامه داد حیولا قدرت های ای داره و شما نمی تونید با اون مبارزه کنید در مورد پیشناده تو هم زیبای من خیلی ممنونم اما نمی تونم را قبول کنم من پیر هستم و تنها نراحتیم جدا شدن از فرزندانمه زیبا پاسخ داد: وقتی نزد هیولا میرید با شما میام پدر نمیتونید تصمیم منو عوض کنید چون من دنبال شما میام پدرش تصمیم گرفت او رو از این کار باز داره زیبا همیشه منطقی بود اما حالا نمیتونست اینطور باشه بنابراین گفت: پدر من تصمیم او گرفتم همینه و باید انجام بشه. تاجر بسیار غمگین به اتاقش رفت در اتاق رو بست و وقتی صندوق ظاهر شد ناگهان از جاش پرید اونقدر غمگین بود که فراموش کرده بود اونو به بچه ها نشون بده تصمیم گرفت حالا چیزی نگه چون فرزنداش حتما میخواستند به شهر برگردند اما حالا که خودش نبود تا از اونو مراقبت کنه بهتر بود در ده کرده بمونند اما رازش رو با زیبا در گذاشت زیبا هم تعریف کرد که در نبود پدر چند نفر از خواهرهاش خواستگاری کردند و گفت که پدر پولو به اونا بده به این ترتیب اونا میتونن به خوبی ازدواج کنند و هر طور دوست دارن زندگی کنند پدر گفت چطور تو به راحتی خواهرات فکر میکنی در حالی که خودت در پای مرگ هستی اگه اصرار کنی با من بیای حتما هیولا هردوی ما رو میخوره زیبا گفت من فقط میخوام خواهرام خوشحال باشن بقیهش هم انتخاب منه خواهرهاش به او توجه نداشتند وقتی زمان خداحافظی رسید پیاز به چشمهاشون مالی تا اشکشون در بیاد و وانمود کنند که دارن گریه میگنند در حالی که در باتن دعا میکردند هیولا او رو بخوره اما برادرهاش واقعا ناراحت بودند و از ته دل گریه میکردند با این حال زیبا اصلا گریه نکرد اونا به راه افتادند. به نظر می اسب راه قصد رو می دونه. از میان جنگل گذشت و سر دوراهی خیلی سریع راه رو پیدا کرد. زیبا از سواری لذت می برد. زیرا کم پیش میومد که سواری کنه. اما نایهان سر تا پای وجودش رو ترس گرفت و می خواست به مزرعه جایی که در امان بود برگرده. زیبا زیبا بالا رو نگاه کرد. اون بالا هیکلی رو در نور دید. فقط یه لحظه بود و خیلی زود ناپدید شد. آیا اینطور خیال کرده بود؟ نمیدونست. بعد از این جریان با قوت بیشتری به سمت قصر حیولا می رفت. وقتی قصر از دور نمایان شد، زیبا با خود گفت: با نمی نمیتونم چیزی بگم. حیولا باید خیلی ثروتمند باشه. اسب خودش وارد استبل شد و زیبا و پدرش هم وارد قصر شدند اونا دیدن که میز برای دو نفر چیده شده و غذا هم آماده است زیبا با خود فکر کرد حتما هیولا میخواد قبل از خوردن ما رو چاق کنه زیبا باید تمام قدرتش رو بکار میبرد تا بر ترسش غلبه کنه پدرش اونقدر دست پاچه بود که زیبا سعی میکرد خودش رو خوشحال نشون بده زیبا مثل اینکه در خونه خودش باشه صحبت میکرد و به پدرش میگفت کمی غذا بخوره اما نایهان صدای وحشتناکی به گوش رسید و حیولا آمد. زیبا به او خیره شد. از ترس خوشگش زده بود. هرگز فکر نمیکرد انقدر عجیب و غریب و بد باشه. واقعا ی حیولا بود. در این حال زیبا دلش برای زشتی بیش از حد او می سوخت پرسید آیا با میل خودت به اینجا اومدی زیبا با لکنت گفت ب ب ب ب بله بعد هیولا گفت بنابراین این پدرت صبح زود از اینجا میره و حالا شب بخیر به محض اینکه تاج رسید حیولا ناپدید شد پدر از زیبا خواست اونجا رو ترک کنه اما زیبا با صدایی رساب و محکم پاسخ داد. نه پدر. همینطور که حیولا گفت فردا صبح باید اینجا را ترک کنی. باید باور داشته باشی که نیروهای پنهانی منو حمایت می کند. این کلمات شجاعانه به نظر می رسیدند. اگرچه زیبا بسیار می ترسید و میدونست که از ترس نمیدونه بخوابه. اما هنوز سرش به بالش نرسیده بود چشماش هم بسته شدند. زیبا همون صدایی بود که قبلا شنیده بود زیبا تکان خورد حالا زیبا اون شکل رو به خوبی میتونست ببینه زنی نورانی که نوری اطراف اون میدرخشید زن نورانی گفت خوشحالم که زندگی خودتو به خطر انداختی تا زندگی پدرتو نجات بدی زیبا همین کار رو ادامه بده تا پاداش بگیری بعد ناپدید شد آیا خواب بود یا واقعیت داشت؟ زیبا نمی دونست. زیبا تا صبح روز بعد به آرامی خوابید فردا صبح با حیجان درباره زن نورانی با پدرش صحبت کرد و قبول کرد که نشانه خوبیه اما به هنگام خداحافظی به سختی گریه کرد زیبا رفتن پدرش رو نگاه می کرد حالا در قصر تنها بود مطمئن بود که حیولا امشب او رو می خوره. به خاطر پدرش ترسش رو پنهان کرده بود اما حالا به شدت گریه میکرد ولی سرانجام با تلاش بسیار گریهش رو تمام کرد و با خودش فکر کرد حالا که زنده هستم پس باید از وقتم لذت ببرم زیبا تصمیم گرفت قصر رو بگرده همینطور که اطراف رو نگاه میکرد ناگهان روی یه در علامتی دید که روش نوشته شده بود کاشانه زیبا خیلی تعجب کرد. آپارتمان درست مطابق سلیقه زیبا این شده بود. همچنین کتابخانه و پیانو هم گذاشته بودند. با این حساب حیولا نمی‌خواست حوصله زیبا سر بره. ناگهان فکر دیگه ای به ذهن زیبا رسید. مطمئناً اگر حیولا قصد داشت او رو بکشه اینقدر به خودش زحمت نمیداد تا سرگرمش کنه. حالا حالش بهتر شده بود. خصوصا وقتی کتابی برداشت و کتاب خود به خود باز شد و این جمله ها به چشمش خورد. خوش آمدی زیبا. اینجا تو ملکه هستی. خواست و آرزوهای تو اجرا میشن. زیبا گفت الان فقط میخوام پدرم رو ببینم هنوز این جمله از دهنش خارج نشده بود که در آینه بزرگ روبرو خونه خودشونو رو دید پدرش بود که از اسب پیاده میشد و خواهرها و برادراش به سمتش میدویدند تصویر ناپدید شد اما حالا زیبا میتونست با احساس آرامش کتابخونه رو ببینه موقعی ظهر به تالار رفت غذا آماده بود در حین غذا خوردن صدای موسیقی به گوش می رسید اما نمی تونست بگه صدا از کجا میاد با خود فکر کرد حق با پدرم بود حیولا بسیار قدیه و به نظر می رسه که می خواد منو خوشحال کنه اما شب موقع شام صدایی شنید حیولا پشت او ایستاده بود قلب زیبا مثل قلب پرنده ای ترسیده می زد. چقدر زشت بود اما باز هم یه قسمت از قلبش برای حیولا دلسوزی میکرد. برای مدتی طولانی حیولا ایستاد و به زیبا خیره شد. به آرامی چرخید. گلوش رو صاف کرد تا صحبت کنه. اما دوباره مکس کرد. سرانجام به خودش جرأت داد و گفت ممکنه بشینم و غذا خوردن شما رو تماشا کنم؟ دستور نبود خواهش بود زیبا با تعجب نگاه کرد بعد با لکنت گفت اینجا ق... ق... قصر شماست ش... شما باید ب... بگید نه من حیولا گفت نه اینجا شما خانم هستید اگه بخوایی برم حتما این کار رو میکنم راستشو بگو آیا به نظرت زشت هستم؟ زیبا آهسته گفت بله، زیبا از ترس می لرزید. اما حیولا حقیقت رو خواسته بود، بنابراین نمیتونست دروغ بگه حیولا گفت، انتظار ندارم به نظرت جذاب بیام، زشتی من تنها ایرادم نیست، من نادان و بیخرت هم هستم، یه احمق زیبا به سرعت پاسخ داد، شک دارم، چون احمقها همیشه فکر میکنند که خیلی باهوشند حیولا نتونست پاسخی بده و کمی مکس کرد. عقب کرد و سرش رو عقب کشید و این پا و اون پا شد. زیبا فکر کرد نه تنها زشته بلکه نه رفتار مناسبی داره و نه خوب میتونه حرف بزنه. اما از یه حیولا چه انتظار دیگه ای میشه داشت؟ هنوز بخشی از وجودش برای حیولا دلسوزی سوزی میکرد. ناگهان حیولا گفت میرم سر اصل موضوع. من فقط تو رو میخوام امیدوارم از زندگی در اینجا لذت ببری تنها آرزوی من شادی توه کلماتش بیشتر شبیه غرش بودن تا صحبت کردم اما زیبا منظور او رو فهمید و دیگه اثری از ترس باقی نمود زیبا پاسخ داد هیولا مهربانی تو منو خوشحال میکنه متشکرم در واقع حالا که به تو نگاه میکنم تقریبا فراموش میکنم که تو زشت هستی حیولا گفت درسته قلب من مهربانه اما من برای دنیا یه حیولا هستم زیبا گفت تا اونجایی که در مورد دنیا میدونم بعضی از مردم شایستگی چیزهای بیشتری دارن. من تو رو به افرادی که حریص و ظالم و فاصدند ترجیح میدم هیولا گفت اگه باهوش بودم میتونستم جوابی شایسته بدم بنابراین فقط میتونم بگم متشکرم و بپرسم آیا همسرم میشی؟ این پیشنهاد برخلاف انتظار زیبا بود زیبا با ترس برگشت و لرزید اگر جواب رد میداد آیا حیولا عصبانی میشد و او رو میخورد؟ تمام شجاعتش رو جمع کرد تا پاسخ بده و گفت من تو رو دوست دارم ولی نمیتونم همسرت بشم هیولا آه بلندی کشید به طوری که به بیرون از قصر هم رسید اما نمیخواست به زیبا صدمه بزنه فقط گفت تو رو تنها میگذارم تا با آرامش غذا بخوری شب خیر زیبا قبل از اینکه سالن سالون رو ترک کنه یه بار دیگه برگشت تا زیبا رو ببینه زیبا فکر کرد حیولای بیچاره خیلی مهربانه اما اونقدر زشته که کسی نمیتونه باهاش ازدواج کنه سه ماه گذشت زیبا کاری نداشت انجام بده جز اینکه خودش رو با کتاب و موسیقی سرگرم کنه یا از باغ با اون همه گلهای زیبا لذت ببره خذا براش آماده میشد، شد لباسش از لباسهای ابریشمی پر شده بود فقط کافی بود بگه یه بوشقاب تمشک می یا دلم می موسیقی گوش کنم در یه چشم برهم زدن بوشقاب تمشک آماده می شود. و نوای موسیقی فضا رو پر می کرد. اگرم می خواست به فهم در خونشون چی میگذره؟ آینه جادویی همه چیزشونشون نشون زیبا هیچ وقت در طول روز حیولا رو نمی دید. اما شبا که میخواست شام بخوره، حیولا از راه میرسید. حیولا با زیبا غذا نمیخورد. اما دوست داشت زیبا موضوعی انتخاب کنه و دربارش صحبت کنه. حیولا از گوش دادن به صحبت زیبا لذت میبرد. اما وقتی سعی میکرد خودش صحبت کنه، با عصبانیت و ناراحتی حرفش رو قط می و میگفت من که سالت و کودن هستم، من سبک مغز و نادون هستم. زیبا با صدای بلند می گفت تو سبک مغز نیستی تو مهربان هستی فقط نادانه هستی چون درس نخوندی اما من حاضرم بهت درس بدم هیولا با کمک زیبا شروع به درس خواندن و یادگیری کرد هیولا خیلی تلاش می کرد اما در گفتگو هنوز کند بود و به خوبی نمی تونست صحبت کنه ولی چون خیلی خوش اخلاق بود زیبا دریافت که از همصحبتی با او لذت میبره. در واقع زیبا نمیتونست تا اومدن حیولا منتظر بمونه ولی هنوز چیزی بود که زیبا را ناراحت میکرد هیولا هر شب قبل از شب خیر از او تقاضای ازدواج میکرد طوری که سرانجام زیبا تصمیم گرفت خیلی واضح به حیولا بگه که نمیتونه همسرش بشه زیبا گفت دلم نمیخواد امیدوار بشی و فکر کنی نظرم عوض میشه من تو رو دوست دارم تا حیولای عزیز و دوست خوب من هستی. خواهش میکنم همین حد رو قبول کن. حیولا گفت اگه باید قبول کنم میکنم. اگه نمیتونی آشق من باشی تو رو سرزنش نمی کنم. من میدونم که چقدر نقص دارم. اما من آشق تو هستم. تا وقتی هم که تو اینجا هستی من خوشحالم. زیبا قول بده که هرگز منو ترک نکنی. زیبا سرخ شد. چون میخواست چون این کاری بکنه. زیبا در آینه جادویی دیده بود که خواهرانش ازدواج کردند و برادرانش هم وارد ارتش شدند. پدرش هم مریض بود و دلش برای زیبا خیلی تنگ شده بود. زیبا گفت: حیولای عزیز، اگه بزاری پدرم پدرمو ببینم قول میدم که مدت زیادی پیشش نمونم. اگه نظری برم شاید تا آخر عمر ازت دلگیر بشم." حیولا هم گفت که ترجیح میده او رو به خونه بفرسته تا اینکه یه لحظه غم و ناراحتیش رو ببینه. هیولا گفت هیولا یه بیچارت فراموش نکن او از غم میمیره. زیبا زد زیر گریه و گفت چنین چیزی نگو ببین منو به گریه انداختی ظرف یه هفته برمیگردم قول میدم. هیولا گفت که فردا صبح زیبا با پدرش خواهد بود اما التماس کرد که زیبا قولش رو فراموش نکنه. بعد انگشتری زیبایی به زیبا داد و گفت هر موقع خواستی برگردی انگشتر رو روی میز کنارت بگذار انگشتر تو رو بر میگردونه. سپس آهی کشید طوری که دل زیبا از غم پر شد زیبا به اتاق خوابش رفت اما ناراحت بود که چرا نمیتونه حیولا رو اونطور که او میخواد دوست داشته باشه صبح روز بعد وقتی زیبا از خواب بلند شد خودش رو در اتاقها به خانه پدرش دید. زیبا زنگ زد تا خدمتکار بیاد. حواسش نبود که خونه خودشونه. پدرش دوید و از دیدن دخترش غرق شادی شد. زیبا میخواست لباس بپوشه اما متوجه شد که لباس نداره. در همون لحظه خدمتکار با نگرانی و تعجب و با شتاب داخل اتاق شد و گفت خانم دروغ نمیگم من دیدم گنجه ای به طرف اتاق بغلی پرواز میکنه گنج پر بود از لباسهایی که تا به حال کسی ندیده لباسها از طلا و الماس پوشیده شده بودند در نبود زیبا هم هیولا به فکرش بود زیبا فکر کرد که حداقل کاری که میتونه انجام بده اینه که یکی از لباسها ها رو بپوشه که هیولا زحمت کشیده و براش فرستاده زیبا ساده ترین لباس را انتخاب کرد که البته بسیار قشنگ بود دختر گفت پدر بقیه لباس ها رو به خواهرام میدم با گفتن این حرف گنجه ناپدید شد پدر خندید و گفت فکر میکنم منظور حیولا این بود که لباس ها فقط برای تو هستند، نه برای خواهرات. همینطور که گنجه به آرامی برمیگشت زیبا هم گفت بله فکر میکنم درست میگید زیبا دیگه تحمل نداشت دلش میخواست خیلی زود خواهرش رو ببینه اونا هم خیلی زود با همسرشون رسیدند اما خوشحال نبودند خواهر بزرگش با مردی ازدواج کرده بود که بسیار زیبا و جذاب بود اما اونقدر خودش رو دوست داشت که جایی برای دوست داشتن همسرش باقی نمانده بود خواهر دومش با مردی ازدواج کرده بود که بسیار باهوش بود اما هوش و ذکاوتش رو به کار برد تا روی کمبودهای جهان به طور کلی و نقص‌های همسر بخت برگشتش به طور خاص انگشت بگذاره خواهرانش از لحاظ روحی در وضعیتی نبودند که از دیدن زیبا با لباسی مانند یک شاهزاده خوشحال بشن و لذت ببرد. و از اینکه زیبا در زندگی در قصری و در جایی که به نظر می‌آمد همه خواسته ها و آرزوهاش برآورده میشه خوشحاله، اونا ناراحت بودند. و بیشتر از قبل حسادت می‌کردند. اونا به باغ رفتند تا نقشهای برای زیبا بکشند و تصمیم گرفته بودند که ظاهرا وانمود کنند او را خیلی دوست دارند تا زیبا بیشتر از یک هفته اونجا بمونه اونا امیدوار بودند که حیولا از اینکه زیبا زیر قولش زده عصبانی بشه و زیبا رو بخوره خواهرها چه نمایشی راه انداختند دائم میگفتند زیبای عزیز فلان زیبای عزیز بهمان وقتی یه هفته تموم شد اونا شروع به گریه کردند که اگه تو بری ما میمیریم. زیبا واقعا فکر میکرد که سرانجام خواهرش باش مهربان شدند. تصمیم گرفت یه هفته بیشتر بمونه. از روزی که هیولا رو ترک کرده بود ده روز میگذشت. زیبا نمیتونست فکر کنه که چقدر هیولا دلش براش تنگ میشه. البته با خودش فکر میکرد که منم دلم خیلی براش تنگ شده. اون شب خیلی طول کشید تا زیبا به خواب بره. اما سرانجام خوابش برد. در رؤیا رودی رو دید که از میان قصر می‌گذشت. کنار رود هیولا روی زمین افتاده بود. چقدر رنگ پریده و لاغر شده بود. صداش در نمی اومد. به آرامی گفت زیبا هرچه خواستی من به تو دادم اما تو زیر قولت زدی و من خواهم مرد. زیبا ناگهان از خواب پرید. فقط یه رویا بود، اما واقعیت این بود که زیر قولش زده بود. زیبا با خودش فکر کرد که اگر هیولا به خاطر او در عذاب باشه هیچ وقت خودشو نمیبخشه باید میگفت که با او ازدواج میکنه زشتی هیولا و باهوش نبودنش تقصیر خودش که نبود. در عوض صادق بود و واقعا زیبا رو دوست داشت. من عاشق او نیستم اما او رو دوست دارم و بهش احترام میگذارم حدی از خواهرش شادتر خواهد بود ممکنه همسران اونا باهوش و زیبا باشند اما در عوض بی احساس و سردند زیبا انگشتر رو روی میز کناری گذاشت و وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار شد خوشحال شد که در قصره زیبا با خاطر آسوده بهترین لباسی را که حیولا داده بود پوشید بعد بی منتظر رسیدن حیولا شد زمان آمدنش رسید اما از حیولا خبری نشد زیبا با ناراحتی قصر رو گشت ناگهان به یاد خوابش افتاد و به سوی باغ دوید زیبا به طرف رود رفت هیولا کنار رود رنگ پریده و آرام افتاده بود زیبا فریاد زد او مرده من دیر رسیدم و با سیلی از عشق به طرف حیولا دوید وقتی کنارش رسید دید که قلب حیولا هنوز میزنه زیبا با سرعت رفت و آب آورد و روی صورت حیولا ریخت سرانجام حیولا چشمشو باز کرد و گفت زیبا تو قولتو فراموش کردی من گفته بودم که ترجیح میدم بمیرم تا اینکه بدون تو زندگی کنم اما حالا خوشحال میمیرم زیبا فریاد زد هیولای من منو ببخش من احمق بودم من فکر میکردم فقط به عنوان یه دوست برای تو ارزش دارم اما اشتباه میکردم من آشق تو هستم قول میدم با ازدواج کنم باید زنده بمونی و شوهر من باشی با گفتن این جمله قصر پر از نور شد آدش بازی شروع شد موسیقی فضا رو پر کرد زیبا اطرافش رو با ترس نگاه میکرد بعد پرسید هیولای عزیزم چه اتفاقی افتاده؟ اما حیولا ناپدید شده بود کسی که جلوی پای او زانو زده بود شاهزاده زیبایی بود که از زیبا تشکر میکرد که باعث شده سحر و جادویی که سالها قبل گرفتارش شده بوده باطل بشه او گفت که سالها قبلی پری او را به شکل حیولایی زشت و کودن در آورده بود و گفته بود تا ابد به این شکل میمونه مگر اینکه دختری زیبا حاضر به ازدواج با او بشه حیولا ادامه داد پری فقط یه چیز برای من باقی گذاشت و با اون هم قلبی سخاوتمند بود. زیبا فقط تو خیلی عاقل بودی که به خاطر اون عاشق من شدی. شاهزاده همه ی داراییش رو به زیبا داد و گفت هر چی بهت بدم نمیتونه دین منو به تو جبران کنه. اونا با هم به قصد رفتند. در کمال تعجب زیبا پدر و خواهرانش رو دید و بعد حیکلی نورانی که به سمت اومی اومد. او مادر مقدس بود که گفت زیبا تو فکر میکردی من فقط یه رویا هستم در حالی که همیشه با تو بودم. زیبا اونقدر متعجب شده بود که نمیتونست حرف بزنه فقط میتونست به صحبتهای مادر مقدس گوش کنه او ادامه داد انتخاب تو رو تحسین میکنم تو ترجیح دادی قلب پاک رو انتخاب کنی تا هوش یا زیبایی رو و من پاداشی به تو میدم شاهزاده که با هر سه اینو داره تو ملکه بزرگی خواهی شد و با درایت حکمرانی خواهی کرد مادر مقدس رو کرد به خواهرهای زیبا و گفت و برای شما شما دو نفر به خاطر غرور و هرس خودتون به شکل سنگ درمیایید شما به صورت مجسمه در نظر خواهرتون میمونید تا همیشه شاهد شادی او باشید شاید روزی شرارت شما به فضیلت و درستکاری تبدیل بشه طول میکشه اما غیر ممکن نیست مادر مقدس چوب جادویش رو تکن داد و در یک لحظه همه اونا به قلم شاهزاده شاهزاده برده شدند جایی که مردم با خوشحالی تبریک میگفتند زیبا و شاهزاده با هم ازدواج کردند و تا ابد به خوبی خوشی با هم زندگی کردند پایان داستان و پایان کتاب افسانه پریان